خب بسم الله الرحمن الرحیم باب الفعل باب بعدی فعل هست ما دیروز پنج تا قاعده خوندیم در واقع حسن این کتاب این که ابتدا سوالات و مطرح میکنه بعدن پاسخ میده حالا سوال شیشو بهش میگه متا یرفعو الفعل المضارع فعل مضارع چی زمان معرفو میشه هفت متا یونسبو الفعل المضارع و چی زمان فعل مضارع منصوب میشه بعد شش پاسوخش میده میگه يرفع الفعل المضارع اذا تجرد من النواصب والجوازم ومن كل ما يوجب بنائه بنا مرفوم ايش هو فعل مضارع زمانی که خالی باشد از نواصب و جوازم یعنی ما یک سری ادواتی داریم بهشون میگن ناصبه ها یک سری ادوات داریم بهشون میگیم جازمه ها اینا اگر قبلش نیومده بود فعل مضارع چی میشه مرفو میشه چون سه اعراب بیشتر دیگه نداره و من خب میگه و هم خالی باشه از اون چیزایی که اونم مبنی میکنند چون فعل مضارع جز معرفه های ها و یک سری چیزای که روش بیاد مبنی میشه چی میشه مبنی میشه میگه پس از ناسبه ها خالی باشه از جازمه ها خالی باشه و هم اون چیزایی که مبنیش میکنند قال باشه مبني ني نباش به زبان ساده نحو مانند يعني المطر ويصبر شجر ببین مانند يعني نزلو المطر ببین فعل مضارع مرفوع است چرا چون نا قبلش ناسب اومده و نه جازم و نه اینجا مبني پس ينزلو مرفوع است علامت رفعش همزه هست یعنی باران نازل می شود و يصبر الشجر و شجر سمر میدهد درخت میوه میدهد ینزلو و رو اینجا مرفوح هستن هر دو تاشون چون خالی از ناسبو جازم هستن و مبنی هم نیستند هفت ینسبو الفعل المدارعو متا تقدمهو احد الحروف ناسبه میگه منصوب میشود فعل مزاره هرگاه که قبل از اون یکی از حروف ناسبه آمده باشه وهي ناسبها يك ان يك و هی و عبارتاً ناصبها هست یک ان یک چه؟ نحو اریدو ان اتعلمه اریدو هم فعل مزاره هست ولی این چون ناصب و جازم روش نومده مرفوه آخرش بخاطر این زمه گرفته اما اتعلمه منصوب هست چرا؟ چون قبلش اومده ان اومده که ناصب هست بس اتعلمه منصوب لامت نظمش فتحه هست فائده ان لا تنسب المضارعة إذا وقعت بعد فعل يدل على اليقين بل تكون حينئذ مخففة من الثقيلة كقولك علمت أن لا يرجع أخوك والتقدير علمت أنه لا يرجع فخففت أن وحذف اسمها يعني نقطة قشنج ميجي ميجي فعل مظهاره را منصوب نمی کند زمانی که بعد از فعلی آمده باشد که معنایش دلالت بریقین یقین در این صورت یعنی اگر بعد از همچنین فعلی اومد این ان انه نیست بلکه این انی هست که از انه مخفف شده این انی هست که از چی مخفف شده؟ از ان مانند علم تو اللایر اینجا ان بعد از علم تو اومده دانستم به معنی یقینه خب لازم میبینیم که لایرجو رو منصوب نکرده لایرجو مرفوع علامت رفعش چی است ذمه است این ان ان نبوده است علم تو انه لایرجو اخوکا در واقع در واقع چنین است دانستم که برادرت بر نمیگردد تقدیر جمله اینطوری است علم تو انه لایرجو علم تو انه لایرجو فخو میگه تخفیف شده است انه و اسمشم حسب شده است و اسمشم چی شده است؟ حسب شده است لایرجو هم که خبرش هست و فی ما وقع بعد ذنه یجوزو الوچان میگه اگر ان بعد از ذنه اومد بعد از کلمه که دلالت برگمان میکنه بعد از ذن اومد بعد از چی؟ اینجا دو حالت رواست. مانأن تنن تو الله او میتونیم مرفوعش کنیم بگیم زنن تو الله او و میتونیم منصوبش کنیم زنن تو الله هر دو تا اعرابو میتونیم بهش یعنی میتونیم انو ان ناصبه حساب کنیم و میتونیم این انو ان مخفف از ان حساب کنیم بعد از باله گمان کردم که برادرت بر نمیگردد پس هر دو اعراب میتونیم بهش بدیم زنن تو الله یارجو یعنی مرفوعش کنیم و میتونیم منسوبش کنیم زنن تو الله یارجعاء منصوبش کنیم اما اذا وقعت بعد غير ذلك من الافعال او في في الابتداء فتكون ناصبه میگه اما زمانی که بعد از افعال دیگری واقع شد یعنی از افعال یقینی نبود افعال دیگر بود مثل ضرب تو، مثل نصر تو مثل جلسه افعال دیگه بود میگه اینجا ناصبه هست اون موقع این ان انجه هست ناصبه هست و ان تو اولو معاصلتها به مصدرین یکونو معمولا للعامل قبلها او فی مو به رفع این علال ابتداء بله خب دقت کن میگه اما زمانی که واقع شد بعد از افعال دیگر یعنی نه افعال زنی بود نه افعال یقینی افعال دیگر بود اینجا ناسبه هست و این ان با سلش کلمه بعدش در تعویل مصدر میشه در تعویل چه میشه؟ مصدر میشه اون موقع معمول آمیلی که قبلش اومده قرار میگیره معمول چه قرار میگیره؟ آمیلی که قبلش اومده است؟ یا نه میگه محلن مرفوع و محلن مرفوع هست و چیه؟ مثلا انتصومو خیرون لکن میتونیم بگیم انتصومو مبتدا هست خیرون خبرش بایل ماننده اریدو ان اتعلم اریدو ان اتعلم ببین اریدو ان اتعلم اینجا اریدو فعل مزاره هست مرفوع هست فائلش انا هست وجوبا مستطره ان اتعلمه ان انا ناسبه هست چون بعد فعل غیر افعال اومده هست اون افعالی که ذکر شد اتعن به اضافه اتعلمه در تعویل مصدر هست در واقع این است. هست اریدو اتعلمه اريدو بله ان اتعلمه هر دو تا باهم میشه مصدر میشه که میشه مسئولش میشه چیش؟ میخواهم چی را میخواهم؟ یادگیری را یادگیری میشه چی؟ بله خودش توضیحش داده و تقدیر رو میگه و فان میگه این انی که بعد از اتعلم اومده میگه ان و ما بعدها فی تاویل مصدر منصوب علا کونهی به بهی میگه ان و تا با هم در تعویل مصدر هستند مفعول بیهی هستند مال اوریدو و تقدیر جمله چونی هست از التعلمه این یک مثال مثال دیگر انتصومو خیرون لکم اینو چی میگیم؟ میگیم ان به اضافه تصومو در تعویل مصدر هستند خب قبلشون آمل نیومده پس میشن مبتدا پس میشن چی؟ مبتدا خیرون هم خبرش میگه فعن و ما بعدها فی تعویل مصدر در مرفوع الابتداء ابتدا میگه ان شر کل خاموش که میگه ان و ما بعدها در تعویل مصدر هستند مرفوع هستن به خاطر مبتدا بودن تقدیرش چه هست؟ سیامو کم خیرون لکم سیامو کم خیرون لکم پس اولین ناسب ان بود با توضیحاتش خوندیم دومین لن هست بانند لن یجودل بخیلوه جود نمی کند بخشش نمی کند بخیل خب اینجا میبینیم یه جوده منصوب شده به وسیله چه؟ به وسیله لر به این فتحه گرفته البخیلو هم که فائلش هست مرفوب بازمه ناسب بعدی اذن هست معنی اذن تبلغ القصده. در این صورت به هدف به قصد میرسی خب تبلغه با اذن منصوب شده با اذن چه شده؟ به این فتحه گرفته فائده ولي إذن، يكسر نقطة هاي وبعد ياد نقرأه دي في مرده إذن. ميجي إذن لا تنسب إلا بثلاثة الشروط إذن في لمزارع منسوب. نميكورة مجرد شرط. يك الأول أن تكون صدر الجواب الذي يجاب به. أولا شرط أولا شيء يك صدر الجواب باش. يعني يك حرف ابتدائيات. مثلا زهید میگه انا ادرسو من درس میخوانم ما در جوابش میگیم اذن تنجحه در این صورت تو چی میشی؟ ورفق میشی خب اینجا تنجح در صدرش اومده در صدر چی اومده؟ در صدر یعنی ابتدا باله والثاني أن تكون متصلة بالفعل شرط الدوليش هناك إذن وفعل بهم جي باشان؟ متصل باشان والثالث أن يكون ذلك الفعل مستقبلا ونفعلهم بمعنى جي باشان؟ آيان ألا أنهم أجازوا الفصل بينها وبين الفعل بلا النافية والقسم بيجي متوجه باش نحذيها إجازة عدادان فاصلة بين الفعل وبين إذن را بوسیله لا نافیه و بوسیله قسم گفته بود که بینشون فاصله نیاد میگه ولی یک استثنایی آوردند فاصله بین اذا و بین فل میتونه با لا نافیه و با قسم هیچ مشکلی نداره مانند مثالش این است و اذا لا یلبثو خلافك چی خلفك که اینجا بین اذا و یلبثو فاصله است بالا میبینیم که منسوبش کرده نورش حذف شده نورش شده و همچنین قال شاعر اذن والله نرمیه هم بحر بین اذن و نرمیه بینشون با قسم که والله باشه فاصله اومده است اذن والله نرمیه هم بالی پس با این سر شرط اذن منصوب نیکرد ناصب بعدی کی هست او لکی یا لکی معنید او درست کی تحفظه بخون تا حفظ کنی او درست لکه فرق فرقی نمی کنه بخون تا حفظ کنی تا چکار کنی؟ تا حفظ کنی بله خب اینجا ببینیم که تحفظا به وسیله که یا به وسیله لکه منصوب شده و فتحه گرفته خب ما الان ناصبه ها رو خوندیم الان این ان بعضی جاها مقدر میشه اینا رو داری توصیح میده میگه یون سب المدارع به تقدیر انه فعل مزارب با تقدیر ان منصوب میشه یکی از ناصبها که خوندیم اولین ناصب ان بود دیگه میگه بعضی جا این ان ظاهر نیست مقدره این ان چه هست؟ خودش توضیح میده چه جاهایی پس منصوب میشه فعل مزارب تقدیر ان بعد از لام تعلیل بعد لام چی؟ مانند خود لی لتبرعه بگیر دوارا تا خوب شوید خب اینجا خود دوال تبرعه در اص این ان مقدره در از اس چنین است لان تبرعه تا اینکه که خوب شوی تبرعه پس شده؟ منصوب شده اینجا در واقع با این لام منصوب نشده با همون انی که اینجا چی هست؟ مقدره است. فائده اینجا ایک فائده رو ذکر میکنه کنه یسیحو معالام تعلیل استعمال و عدن فتكون فتکونو والفعل الذي تنصبه في محل جر باللام المذكورة، فتقول حسن سيرتك لتحمل أو لأن تحمل سريرت ما اللي تقوله؟ فتى ده سريرتك به؟ سريرة. سريرة. يا سريرتك قلتي. آره بعد زمّب بگو اینجا فتح گذاشته این کتاب ولی اشتباهی حرکت داره چون این نائب فاعل خب حسن سیرتک لی تحمدا، آو حسن سیرتک لی ان سریرتک جا؟ لی بله. خلاص میگه که صحیح است همراه لام تعلیل استعمال ان ناسبه در این صورت میگه این فعل با ان ناسبه محلن مجرور میشند چون دیگه مصدر میشند نه ان در تعبیل چی میکرد؟ مصدر و الا که هم اومده اونارو مجرور میکنه و الا بك اومده اونارو میکنه مجرور میکنه bale اما اذا اقترنت اللام بلا النافيه اما زمانی که همراه شد لام با نافیه. اما زمانی که همراه شد لام, لام با چی بالا نافیه فلا يجوز استعمالها الا مع ان پس جائز نیست باله ببین در رابطه با لای تعلیل هست گفته بود که بعد از لام تعلیل ان مقدر میشه بعدا در فایده گفت که جایز است صحیح هست که با همراه بالام ان ناصب خودش هم بیاد ذکر بشه مثال شاورد ماننده لئن توحمده لئن توحمده که اینجا ان خودش تو شد؟ ذکر شد بعدا میگه اما زمانی که همراه شد لام بالای نافیه همراه شد لام لام تعلیل بالای نافيه فلا يجوز استعمالها الا مع انجا میگه جایز نیست استعمالش مگر همراه با ان یعنی اینجا ان باید ذکر بشه کراهه تن لاجتماء اللامين چرا چون تا دو تا لام با هم دیگه جمع نشد یکی لا نهی یکی لاه نافیه بالا یکی لام تعلیل و یکی لای نافی دو تا لام میشن دو تا چی میشن به خاطر میگه اجتماع این دوتا لام بله جام نشند کناره هم میگه اینجا خود ان چی بشه؟ ذکر بشه مانند کن علا حضرین لئلا یمسکت درر مواظب باش تا زرر به تو نرسد خب اینجا میبینیم که کن علا لی لئن لا که نون بعدش تو لام اومده ادغام شده چون حروف یارم اومده لام چی شده؟ ادغام شده. پس اینجوری اگر ما ادغامش نکنیم اینجوری هست کن على حذر لان لا یمسک. که میبینیم اینجا انزک شده. چون دو تا لام با هم جنب، اگر ما انو حذف کنیم چی میشه؟ ل لا. دو تا لام با هم دیگه چی میشن؟ کنار هم میاد، جنب میشن. میگه این مکروحه به خاطر کراهت این کار انو بیاری وسطشون. لان لا، ل الله. از فونین حرارت جول آمانتور بود خب والاصل لان لا یمسک خودش اینو توضیح داده فعبدلت النون و لام لمناسبه لام ثم ادغام تا میگه اصلش لان لا یمسک بوده که اینجا لام در نود ادغام شده نون در لام ادغام شده است بله یا به عبارتی تبدیل شده است نون به لام جهت مناسبت با لام سپس با هم دیگه ادغام شده‌اند خب یکی از جاهای دیگه ای که این ان مقدر میشه بعد از لام تأکیده مانند ما کنت ان قضا العهد توی نیست که من عهد را بشکنم خب اینجا میبینیم که ان قضا یا من حراج اهدرا نمیشکنم خب داره تأکید میکنه چیش معنی کرده مال شما؟ بله معنیش نکرده خوب خیر است پس ما کنتو لین قدل اهد اینجا ان بعد از این لام چی شده؟ بعد از این لام تأکید پنهان ها مقدر هست فواید این لام تأکید یعتابه بها لتوکید النفي بعد کان المنفيه. میگی این همانا لام تأکید یا الله به جهود ببین اینو لام جهود هم میگنده همیشه یا بعد از ماکانه یا بعد از کانه یا یکولو ولی منفی میاد خودش میگه جلوتر میگه فواید همان الله به تاکید آورده میشه تا نفی رو توکید کنه تا نفی رو چکار کنه توکید کند ماند ماکان الله من داسه ماکان منفی هست الله اسمش هست لیظلیما این لام لام تأکید هست یا لام جهود بهش میگند خب میبینیم که منصوب شده لیظلیما چون ان بعد از لام جهود یا بعد از لام تأکید چی میشه؟ مقدر میشه یا مزاره منفی لم یکن الله لیغفر لهو پس ما کان الله الناس یعنی هرگز خداوند تأکید دیگه هرگز خداوند به مردم نمی نمیکنه، هرگز خداوند آنان را نمیبخشد. دو تسمه ایزن هذه لام لام الجهود لملازمته الجحد او النفی. میگیم نام این لام همچون لام جهود نامیده میشه، تون همیشه همراه با جهده همیشه همراه با نفیه، همیشه بعد از کانه منفی میاد. ولی چه مزارش چه مازیش بله حتی یکی از دیگر جاهایی که این ان مقدر میشه بعد از حتی هست مانند این دوری بل مذنیبه با حتی توبه بزن گناهکار را تا توبه کند که اینجا یه توبه با ان مقدر منصوب هست و حتی تغییب شمسو بله در ازشونین حتی آن بالکه منصوب شده و فتح گرفته شمس هم فعال فایده میگه حتی في هذا الباب تكون حرف جرن اما للتعليق نحو زورني حتی أكرمك أو للغايه نحو سر حتی تبلغ الجبل أو للإستثنائي میگه حتی در این باب می باشد حرف جر حتی فی هذا ذا البابی حرف جر در این باب حتی حرف چیه؟ جر هست یا برای تعلیل هست مانند زرمی حتی اکری بکن مرا زیارت کن تا اکرامت کنم یا برای غایت هست نهایت و هدف مانند سير حتى تبلغ الجبل برو التاب بكوه برسي كتاب لغر منصوب شده او للاستثناء يا براي استثناء است مانند ليس العطاء من الفضول سماحتا حتى تجوده وما لديك قليل ايجا براي استثناء است بقن نيست بخشش از چيز زيادی مگر این که بخشش کنی و نیست در نزد تو مگر چیز کم مگر این که بخشش کنی و نیست در نزد تو مگر این که چیز یعنی زمانی که تو در نزد چیز کم بود و بخشش کردی اون موقع این سماحت است. این ایثار هست خب و فی غیر إما حرف جر لخصوص الغاية أو حرف عطف أو حرف ابتداء وسيأتي الكلام على كل ذلك في موضعه ومعنى هاي ديگر يا حرف جر هست براي خصوصية غاية يا حرف عطف يا حرف ابتداء كم بحث دارين رابطه سر جاي خودش خواه دامان در بحث معاني الحروف ونجا بحثش ميكونين ويشترط في الفعل الواقع بعد حتى إن يكون مستقبلا بالنسبة إلى التكلم، فإذا كان بمعنى الحالي رفعه ميجر شرط هس درفيلي كي بعد حتى وما ده أز بمعنى آيند باشاد نسبة بتكلم. يعني قل لحظي كطرف سخن قلته أز بمعنى كي بود باشاد آيند باشاد. اما اگر به معنای حال بود به معنای آینده نبود اون موقع مرفوع ما میشه یعنی بعد از حتا دیگه منصوب ما نمیشه بالند سر تو حتی ادخل لادخل المدینه رفتم تا اینکه داخل شدم تا طحالتی که داخل شدم چرا مدینه را شهر را اینجا ادخوب معنیه حال هست تو اون موقعی که داخل شدین حرف رو گفتی. او موقعی که داخل شد این حرفو اما اگر بگی سرت حتی ادخول مدینته می تا اینکه وارد بشوم اون موقع دیگه منصوبش میکنه. اون موقع چ کارش میکنه. اما در اون حالت وارد شدن اگه بش بگی سرتو و حتی ادخله ادخول مدیتا، یعنی اون حالی که داری وارد میشی بگی اون موقع مرفو میشه چی میشه؟ مرفو میشه خوب یکی از دیگر جاهایی که مقدر میشه او هست مانند اللہ استسحیلن السعب او ادرک المنا نه ادرکا چون ادرکا یدرکو این متکلم وحده هست ادرکو در اصل هست ولی از اونجای که اومده منصوب شده آخرش فتحه گرفته است ادرکا یودریکو یودریکو متکلمش میشه ادریکو نودریکو بله که در حالت نسبی میشه ادریکا حتی من کار سخت را آسان میشمارم تا این که به آرزو برسم تا این که به آرزو چکار کنم؟ برسم که میبینیم اینجا به ادریکا منصوب شده بعد از او، چون مقدره یا لا استريح، او اخ الحقد من قلبك، او اخ رجل من قلبک قلبک یا قبلک نه این قلبکه از دلت مانيش شینه میگه اصراحت نخواهم کرد نمیشینم تا زمانی که خارج کنم یا ما جارين خارج کنم حق درا از دلت از ضرونت این قلب درست قابل درست نیست فائده او لا ينصب الفعل بعدها لا لا ينصب الفعل بعدها بان مزمره الا اذا صلح مكانها الا الاستثنائیه او الا الانتهاییه یک نقطه رو داری میگه میگه منصوب نمیشود لایون سبول فعل بعدها میگه منصوب نمیشد فعل بعد از او با ان مزمر با ان پنهان مدر زمانی که صلاحیت اینو داشته باشی که تو سر جای او بتونی الا رو قرار بیدی الا استثنائیه رو یا الا انتهایه رو اگر تو نستی به او ال قرار بدی یا الا قرار بدی اون موقع منصوب میکنه. اون موقع خیلی که بعد از اومده منصوب میشه. مانند اظرب او یطیح؟ بزن او را مگرین که اطاعت کند او اظرب او یوتی بزن او را زمانی که چکار می اطاعت طاعت کند که اینجا به منیه این او میتونیم هم به سر جاش الا بیاریم هم میتونیم الا رو بیاریم اما وفی غیلی ذلك تکونو لیمجرد الاطف در جاهای دیگر یعنی در جاهایی که ما نمیتونیم سر جاش ایلا یا ایلا رو بیاریم اونجا اطف هست دیگه اونجا دیگه بعدش مقدر نیست الفا السببیه المسبوق به نفی محض بایلی ایکی دیگر جاهایی که ان مقدر میشه فای سببیه هست که قبلش نفی محض اومده است که قبلش اومده است؟ مانند ما انا بمسیئ فاخافه من گناهکار نیستم که بترسم خب اینجا فا فای سببییه هست اخافه منصوب شده به خاطر این فتحه گرفته و قبلش هم نفی اومده از ما انا نفی محض بالای او بطلب محض یا قبلش طلب محض اومده باشد که همون جودو فتسودو جودو بخشش کنید تا سروری کنید خب اینجا ما میبینیم که تسودو منصوب هست علامت نصبش نون هست چرا منصوب شده؟ چون قبلش طلب محض اومده که جودو هست فعل امر هست جد، جودا جودو جد، جودا جودو باره جمع مذکر حاضر هست یا لا تقرب من شرمی فتقعفی بازم طلب محض هست چون لا لای نهی هست لا لای که هست نزیک نشو از شر. پس دران واقع می که تقعه می بینین منصوب شده چون فافای سببیه هست و قبلش طلب محض اومده هست و منصوب الامت نصبش هم فواید. هست فوائد. فوایدی رو در باید ذکر کرده النفی یشملو مکانه بالحرف میگه نفیه حالا گفته بود که قبلش نف بیاد حالا نفی داره توضیح میده که این نفی چطوری باشه میگه نفی میتونه اون شامل باشه که با حرف منفی شده باشه معنیم ده لم یزور نا فنکرمهو که اینجا با لم، که حرف منفی من، من، من شده لم یزور نا ما رو زیارت نکرد که او رو چک اکرام کنیم خوب اینجا نکرمه ما منصوب هست فافای سببیه هست قبلش منفی هست با لم یا با فعل منصوب شده باشه فرقی نمی کنه ماننده لیس الاسطادو حاضرن فنستفیده میره استاد حاضر نیست پس که از, از اون چیکار کنیم؟ فائده ببریم خوب اینجا نفی محس که قبل از فا اومده با لیسه هست که فعله لیسه دیگه فعل ناقصه هست یا با اسم باشه مانند زیدون غیر قادمین او زید آینده نیست که منتظرش میشیم. زید نمی آید که چیش باشه؟ منتظرش بشیم. پس این توضیح قشنگ بوداد گفت قبلش نف بیاد فرقی نمی کنه این نفی چی با حرف باشه چی با فعل باشه چی با اسم باشه اینجا با غیره هست که غیر اسمه غیر چیه؟ اسم هست فاننتظرها منسوب شده ويلحق بها التشبيه الواقع موقعه نحو كأنك أمير علينا فنعطيك والتقليل نهو قلما تأتينا فتحدثنا ها لا ان قلما بله كل جملة شما اشتباه نوشتي خوب قلما بمعنى كم خوب. پس تشبیح و تقلیل هم نقش نفیو بازی میکنن یعنی اگر تشبیح یا تقلیل اومده بود باز هم این فافای سببیه هست و بعدش انچه میشه مقدر میشه ماننده که انکه امیر رو نلینه فنوعطیه که انکه تشبیح هست گوی که تو امیر هستی برما فنوعطیه منسوب شده و آخرش چه گرفته فتح. اینجا هم قل ما تعتینا فتحدیثنا فتحدیثا شده و آخرش چی گرفته؟ فتحه گرفته حالا که بحث طلبو کرد در فایده شماره دوم طلبو توضیح میده میگه الطلب گفته بود که قبلش طلب بیاد طلبو توضیح میده میگه الطلبو یشملو الامرا نحو ادرس فتنجه میگه طلب شامل امر میشه مانند بخوان تا موفق شوی کمی بینیم اینجا تنجه منسوب شده و نه شامل نه میشه طلب مانند لا تدنو من النار فتحترق ریقه آتش نشو پس میسوزی که اینجا تحترق منسوب شده شامل استفهام میشه ولی استفهامه شامل استفهام میشه مانند هل تسمو و ف اخبره که آیا میدهی پس خبرت کنم که اینجا اخبره منصوب شده و آخرش فتحه گرفته چون این متکلم وحده هست بعد از عرض میاد مانند ال تو به سر ن آیا نزدیک نمیشی ما چی شما کجای نوشته؟ کجا؟ خ تو به سر هست من سوش کن یا تزیص حالا درستو فتحف چرا درس نخوندی که حفظ کنی؟ که می‌بینیم اینجا فتح فظه منسوب هست با فتحه و شامل تمنی هم میشه آرزو کردن مانند لیت لی مالا فأجود به كاش که مال داشتمو سخاوت می‌کردم که اینجا فاجود منسوب شده و فتحه گرفته قبلش تون تمنا اومده و ترجی ترجی هم لاله یصافر مسافرت بروودو ترا زیارت کند که اینجا یزوره منسول شده و فته گرفته است پس طلب که گفت شامل این چند چیز میشه امر ناهی، استفهام ارز یا ارز تحزیذ و ترجو تمنی سه اونجا گفته بود قبلش طلب محض بیاد الان نفی محض اینجا النفی محض توضیح میده المراد بالنفی المحض ما لم یاتی بعده ما یوجب تاویله بالاثبات او مالا ينتقدو بإلّه میگه منظور از نفی محض آن هست که بعدش چیزی نیومده باشد که اونو در تعویل بکنه در تعویل چه بکنه؟ یا این نفی نباشد که بعدا دوباره به وصیل الله شکسته شده باشه نقص شده باشه مانند ما تزالو تعتینا فتحدفنا میگه درست ما تزالو منفی هست چه ولی تزالو که خودش به شکل به تنهای منفیه اون ما که روش اومده منفی در منفی چی میشه؟ مثبت میشه تزالو از بن میره ما روش بیاد مثبتش میکنه در تعویل مثبت میشه نه؟ پس اینجا فتو حدیثو اینجا این فا دیگه اینجا بعد انش نیومده چرا؟ چون قبلش نفی محض نیست قبلش نفی محض تزالو ز... اگر خود الله اصله نبود ظاله ی از بین رفتنه ما که روش بیاد مصبتش میکنه ما که بیاد چشکارش کنه مصبتش میکنه خب اینجا هم ما عراقه اللہ تقومو اینجا درس ما عراقه منفیه ولی الله اومده ازه اونو نقص کرده ماله فتعیذونا دیگه نمیتونیم بگیم فتعیذانا بعد مرفوش کنیم بعد چکارش کنیم؟ فتا ایدونا و پس نفی محض توضیح داد و المراد طلب المحض مال خوب اونجا دو تا مسئله گفته بود یکی گفته بود که قبلش نفی محض اومده باشه ها؟ چی گفته بود؟ باله یا طلب محض یا چی؟ حالا نفیه محض توضیح دا داره طلب محضز توضیح میدهه. داره چی رو توضیح میده؟ ببین میمراد و بالطلب طلب محصماللم یهکن به اسم فعل میگه منظور از طلب محض اینه که اسم فعل نباشه ببینید ما یک سری اسمهایی رو داریم که به معنی فعل هستن به معنی فعل امر هستن معنیشون مع فعل امره وال خودشون فعل امر نیستن اسم هستن میگه این شامل اون نمیشه. این اینو نمیگند طلب محض. طلب محسونای بود که قبلا گفت. اونای بود که قبلا گفت. معنی ده؟ صح. صح یعنی خاموشه. اسم فایل. ولی فایل امر نیست. پس طلب محس نیست. خاموش فا اوحادیس که ترس سخن بگویم. به حدیث بگویم. فا اوحادیس دیگه نمیتونیم منسوخش کنیم چرا؟ چون میگیم قبلش طلب محس نیومدی نه محض هم؟ هزم او المصدر یا مصدر ما مصدر هایی رو داریم که معنی امر هستن. آ؟ این ولی این دیگه تلبه درس ما نیست. درست معناش معنا امره ولی تلبه محض نیست. ما نده سکوتان فی الناس ساکت باش که مردم چکار میکنند میخواید. اینجا یه نامو مرفوح هست نمیتونیم منصوبش کنیم چون قبلش طلب محض نیومده او به لفظ خبر یا اگر مثلا به معنی امر بود ولی لفظش لفظ خبری بود جمله خبری بود فل خبری بود ماضی بود مزاره بود امر نبود بگذار که به معنی امره ولی دیگه طلب محض نیست مانند رزقنی الله مالن فاتصدقو به خدا مرا روزی دهد ده دعا هست رزاقه درست فعل ماضیه ولی دعایه درست دعای ولی طلب محض دیگه نیست طلب محض دیگه نیست چون لفظش لفظ ماضی و خبر است. خدا میرا روزی دهد که از پس آن را صدقه میدهد دیگه نمیتونیم بگیم فعت صدقه چرا؟ چون قبلش طلب محض نیومده است. خب دیگر جایی که این ان مقدر میشه بعد واو المعيه است الواو المعيه المائيه المسبوقه بنفي او طلب كما في الفاء السببيه بيجي ديجر جاي ان مقدر مش واو معيه است واو قبل قبلش يا نفي وما باشا يا طلب مثل, مثل فا مثل شي تمون بحث الفاء دقيقا والين فا واف هاست بان الله ازوروك وتهجرني بين لا ازوروك تو را زیارت نمی تو را زیارت نمی کنم. پس مرا هجران کنی اینجا این نه خب زیارتت نمی کنم همراهی که تو داری باوجودی که تو داری مرا چکار میکنی ترکم میکنی حجر میکنی خب اینجا تهجور منصوب شده بعد از چرا چون میگیم بعد از واف اومده و ين... قبل از این واف قبل از این واف نفی محسو لا لعازوره یا مثال دیگر هل تظلمونی و انصفک آیا مرا ظلم میکنی و من با تو انصاف کنم خوب اینجا هم آیا همراهیم که تو مرا ظلم میکنی من انصافت کنم خوب اینجا هم تظلمو هل تظلمونی اینجا طلب محزومه چون استفامه. چون چیه؟ استفهامه ما قبلن خوندیم که قبلش یا نفر بیاد، قبل از سب... فایع سببیه یا وافمئیه یا طلب بیات خب استفهام جز طلبه دیگه امر استفهام نهی الان خوندیم این جز طلبه استفهام جز چیه؟ خب استفهام اومده هل تظلموني آیا برا ظلم میکنید استفهام هست یا نه پس قبل از واو چون استفهام اومده ما بعدش انصیفه منسوب طلب میشه طلبه بحثی چی طلبه محسیب بعدا یک قاعده دیگه که مونده میگه الواو والفاء و ثم أو... العاطفات ها على اسم جامد أو غير مؤول بالفعل، كقوله: ولبس أعباء وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوفي. مِجْفَاظٌ وَفَاقٌ وَثُمَّ وَأَوْهُ وَتِّ زمانی که عطف بشن بر اسم جامد زمانی که عطف بشن بر چه؟ یعنی معوله به فعل نباشه اون اسم در تعویل فعل نباشه اسم جامدی باشه مثل مصدر مثل لبس یعنی پوشیدن یعنی چی؟ به معنی فعل دیگه نیست معنی فعلو؟ نباله اینجا هم اگر اگر این واف عطفش داده بود به چی چیزی؟ بر اسم جامدی اگر و عطف فا ثمه یا او این فعل مزاره رو عطف داده بودن به اسم جامد به اسم چه؟ اینجا هم منصوب میشه یعنی ان مقدر میشه بعد از این واف و فا ثمه و او مانند این مثال و پوشیدن لباس خشن در حالی که چشم من روشن باشد محبوب ترست در نزد من از لباس های نازک، لباس‌های لباس تناس، لباس های, های عبری خب، اینجا میگه و لبسو عباعتین، پوشیدن عبا، پوشیدن لباس خشن، لباس توند آه؟ و تقرعینی، در حال و... و خوشحال بودن و, و شاد بودن چشم من و خونکی چشم من همراه با خونکی چشم من میگه حب و محبوبتر در نزد من از پوشیدن لباس های ابریشم و نازوک و لباس های بسیار خوب خب اینجا میبینیم که تقره منصور شده تقره چی شده؟ منصور شده این هم فائلش هست این واف این واف و, واف و این واو عطف است به اسم جامد که لَمز هست نه این واو و تقرردی که بعد از بعد از واو این واو بیا واو عطف این واوی هست که تقر بعدش بده نه چون اینجا ان مقدره نه یکی از جاهایی که ان مقدر میشه بعد از واو عطف عطف واوی که عطف داده بر چی باله بر اسم جامد این واف مثال برای واف بود برای فاء هم مثال وکا قول که لولا مشاغلی فتمنعنی لزرتک اگر مشغولیتهای من نمی بود و مرا مانع نمی شد من حتماً تو را زیارت میکردم خب اینجا هم میبینیم که مشاغل اسم جامده فتمنعه منسوب شده چون فاء فایی که عطفش داده به اسم جامد اومده و مقاومتک که العدوه ثم تنتصیر فخرون عظیمون میگه مقاومت کردن تو با دشمن که سپس پیروز بشی فخر بزرگیست خب اینجا هم تنتصیر بعد از چی اومده؟ بعد از ثم آتفه که قبلش هم چی اومده؟ اسم جامد مقاومت اینجا هم میبینیم که تنتصره منصوب هست علامت نصفش فتح است. و وحدت المرء و یموتا خیر من مجالسه الاشراری میگه تنها بودن شخص همراه با اینکه بمیرد همراه با مردنش بهتر است از هم نشینی با بدن خب اینجا هم که میبینیم یموتا منصوب شده چون بعد از واف اومده بل شما واو یا او هست بله خب و قبلش هم اسم جامعه اومده است بله این بود از نواصب که بحث بسیار زیبایی بود